اعوذ بالله بسم الله الرحمن الحمد لله من اند شود رو مرحوم شیخ در دفترش به نحر فرمودند با همین کاری که سی معامله انجام بده با قاضی و درش فلاح از مल्लभ کم میکنه برای اینکه به نحو حکم بکند علاوه شیخ فرمودند که این معامله یا رشوه یا ملحقه رشوه سه صورت کردن در دو صورتش رشوه. صورت رشوه یک صورت ملحقه رشوه این راجع این ما درم فرمزن و فی فساد المعاملت المحابابه ها مجموع محابابی ها اشون طبیعون از سرم زادرم مرادیشون برای حقص صورت باشه زادرم برای علم و ایندالله از این که احتمالاتی که در مثل این جور موارد داده میشه یکی مسئله نگه در معاملاته البته نه اگه در معاملات بناشون این اکته ها رو اید از توضیح جا رزمی به خود معامله نه کرده باشی اینجا شنه و شبهه که نه در رشوه خوده و این معامله خودش رشوه به اصطلاح نیست عرضه خونه شفرکه مثلا خونه درمینه رو بین یک میگونی که نه او حق اینجا به اصطلاح به خود این عرض نه که علاق نگرده به حساب زار رو بر توضیح بشن یکی احتمالا این که مسئله مسئله اجتماع و نهی باشه که دوزیه شدیوز از کرده یکی مسئله شرط به اصلا یکی مسئله این که به این حرام باشه نه از به این حرام به این حرام باشه اخذ حجرت اخذ کول در مقابل حرام باشه که این اصلاف هسته بشه یکی هم مسئله فساد شرط رو که شرط موجود فساد فشروط بشه این روز توزیاتی رو از خیلی به نقداری که بحث رو بشن بشه و این بحث رو افاقی با بشه و عرض شد که هر این از که شرط التضام و فیزن التضام این روز اینه من توضیح کافی عرض کردم التضامات شخصی رو در مقابل التضامات قانونی التضامات قانونی تصور و من به یه اما اعتبار همون شخصی از مکلف به ماه و مکلف صادر میشه بیروس سوزیار شده و بحث التضامات شخصی در فقر به و کلی یک باب واسعیه و این خیلی سمرات داره انتظامات شخصی معروف هم یکی اهود یکی نزوره ایمان اقسام به استدامه مثل ایمان و مسئله شروط اینا اعتضامات شخصی. از کلید اعتبار شخصی و التزام شخصی هم از اینه اعتبارات شامل بحث نیابت هم میشه یعنی هر چیزی رو که واقعیتی داشت شما بخوایید از اون واقعیتش عوض میشه میشه اسمش اعتبار شما نماز خوندید بخوایید نماز رو در کسیگه دیگه نرار این میشه این چون اگه این کار نکنید نماز مال شماست هر فعلی به خود فاعل نسبت داده میشه. شما باید فعل رو برای کسی که قرار دادید اسمش میکنی اعتبار این رو من دیگوستوزیادش جهت کردم. یک اصطلاحی دارن آیان فوقهای ما حصالت الفساد فلعهود که اصل اولی در عهود فساده از کردن این درست این مطلب که سریع نیست این مطلب درست حصالت فساد وکه این اختصاص به عهود نداره. اصل اولی این به طور کلی اصل اولی در هر ارتضام شخصی بطلا ماشی چون شخص به ماهو و شخص حق جعل نداره اینطور نیست که حق داشتو باشه جعل بکنه بگه مثلا این عمل برای پرانی قرار دادن این کار رو قرار دادم نماز بر کدن واجب کردن حق این حقی نداره چیزی که ملک خودش برای دیگری قرار بده بدون این که شارعه کرده باشه اصل اولی در کلیه التزامات شخصی چه اقود چه غیر اقود ازن نفوزه که اصطلاحا فساد اصل اولی ازن کلن این چون که باید التزام از مهمن بیاده اعتبار صادر بشه اعتبار مهمن بیاده اعتبار که شارعه از صادر بشه اگر صدر من المکلب اصل اولی ها نمه اعتباره یعنی اصل اولی اینست که حفظ اعتبار نداره و عرض کرده که در معظم قوانین بشری و, و در شریعت مقدسه از زیادی از اعتبارات التزامات شخصی انزا شدن بنای اطحاب هم بر همینه همون مقدار که انزا شدن قبول میکنیم بقیهش هم باز قبول نمیکنیم. حالا بخاطر تو باشه تو شلوش باشه تو یک جا دیگه باشه حتی تو مسئله نیابر من کراراً بنده قاضی را عرض بنای اصحاب بر این است که نیابت در واجبات از حی درست نیست چون در موارد نیامده ما قاعده این با در خصوص حج, حج با این قرار شد از دلیل اعتراض ماورینا در واجبات نیابت از حی و اجازه داده باشه کما اینکه اصل اولی این است که نیابت از مرده مطلقاً جایزه اما کلام فی واجب به بحث خاص خودش داره تا یا نیابت یا ایثار ثواب نیابت جایزه مثلاً مستعباد کما اینکه برانشون واسینه که در احیاء نیابت در مستعباد درسته نیابت در واجبات درستی نیابت در مستحبات درست به ال اخر این مطالبی که گفتم مثلا فرض کنید شما وقتی تو نماز عدول می‌کنی از یک نماز جو سبب وجود در روایت آمده بقیه شده، بنای اصحاب اینه که اونه که در روایت آمده عذول قبول بکنه. چون عذول امن نوع اعتباره. شما در که نماز نمی، اگر نماز نمی، به نماز ظهر است. بعد مریض نماز ظهر نخوندیم، ذاره که عذول بکنه نماز رو. میخوید چه اعتباری بدید؟ شما اونی که واقع شده بگید نماز عصر واقع شده. شما میخوید واقع و عرض بکنید. این که واقع و عرضشو اعتباره؟ عرض همین که عرض بکنید این که خون در عصر این ظهر ما با چی مصفق قاعده اینطور. طور الان بر همینه ما در اون مواردی که حدود دلیل داره قبول می‌کنیم، در غیرش قبول نمی‌کنیم. این نقطه تنیشو به شما عرض که در کل سه یک خیالتون باید باشه در کل سه اصل اولی در هر چیزی اون امر حقیقی شد امر جعلیش احتیاج داره به جعل لکن جعل یا باید جعل شرعی باشه یا جهل شخصی باشه شخص به و شخص حتی جهل نداره جعل شخصی باید منتهی بشه به امزا شرقی به لذا از کردیم مطابه مثلا اوتوب الاغود همینه یعنی امضا کردیم شعاره بگیم من امزا کردیم المؤمنون اند شروعه یعنی امضا کردیم ما کانم نظر لله فصله شون دیدند تو زیاد نمی به اجمالا نگرفتند نزول در تاریخ بشر وجود داره اصلا تاریخ بشر نظریه امرت تاریخی در بشه فقط چاره مقدس آسانی اگر نظر الله بشه برای بودگو و برای کارهای و اینها نمیشه اگر نظر لله بود من امضا می کنم اما اگر نظر مسیح بود کسام خود کسام خود برای مسیح انجام بده این توضیحات می شودیمون تحرس کردیم و از کردیم در روایات ما داریم که المؤمنون اند شروع که این الا شرطن حرام هم ظاهرن این الا شرطن از پای علیه السلام تخصیص نیست که الان تو ذهن علمای ما تخصیص اون یعنی اون هم که از فعیمه من در در این تبیین تخصیص نیست صادقاً توضیح دادم. یعنی احمد علیه السلام یک قاعده رو مخواد برید انتظامات شخصی اگر قانون آمد امضا کرد و اجازه دار حد انزاش تا است که شما با شخصی قانون زیر سوال ندارید شما نمیتونید با انتظامات شخصی قانون بردارید قانون فوق انتظامات جدید از صلح و جا از و بین المسلمین الا صلح هن احل حرام هن اوهر هن حلال سلح یه شخصی نظر یه التضام شخصی شما نظر می شراب با خود خب نمیشه با الت... این تفصیل در حقیقت یک نوع تفسیره و یک تفصیل به نظر من بسیار زیبا و درستی هم هسته در یه تفسیر قامونی شما در دنیا این تفصیل رو برای فرمانی دید قابل قبوله که اصولا التزامات شخصی یک داره محدودی دارند. داره التزامات شخصی چاکر ایسی به آمین نرسته که ما من برسه دیگه اعتضام شخصی نمیشه ولی زا الان در ذهن علمان ما مثلا اگر شرطن اهل درمان معنی اهل درمان کشم نیترین چیه به نظر ما این مجموع کلام بیریم معنی مراد با اعتبارات شرعی نه کلمه اهل یعنی چیه حرامه یعنی چیه حرامه یعنی چیه حلاله یعنی چیه اینطوری مفردی معنا نکنید شما در حد به درست اعلی لو اما شراب رو نمیتونیم تونین چون شارب گزینه شراب منعطره شما میتونید اجاره بدین اما خانه رو برای که رو تاکر می اجاره بدین اون به بعد مثلا ماشین رو اجاره بدین بعد برای حمل شن جیری نمی گیره این ده خاص رو مراد این است که ما با اذهلی اعتبارات شخصی هیچ وقت نمیتونیم اعتبارات قانونی رو هم مشمول نکو طبیعت اعتبارات شخصی این دوره اصلا طبیعتش اینه چرا؟ چون طبیعت اعتبارات شخصی اولا خود شخص اعتبار میکنه خود شخص ایجاد میکنه این اعتبار که ایجاد کرد خود شخص او رو ایجاد کرد این فی نفسه نافذ نیست نگر قانون بیاد وقتی قانون آمد این دیگه نمیتونه کاری میکنه که خود قانون برداره این اشکالی هم به ذهن من در کتب احسانت آمده پرس کردم این بحث لغوی بحث حدیثی هم داره در خدا به حدیث دهل سنت مثل صحیب و خاری ها نیامده اگر آن بخان این مزاد بحث علمی رو ببینم در احکام ابن حض اونجا هم داره ابن حض یک مقدار موارد و زفت میکنه که آیا اینها با اینها میتونیم ما تشریف بکنه یا نه یکیش استحسان یکیش خیاس یکیش اجماع شون ابن حض من خودش دهل سنت یکیش شورا. با مجلس شورا و مشعرت میشه که اهل حکم کنه محضاً مثلا شورا رو در نوکی فنجای که متوفای 450 یا 551 یعنی 900 سال قبل یا 1000 سال قبل به هر حال اینم قاعده المهن مشوته جلد اول علی احکام دین رو شخوندی توی بحث استثنا عبارات ابن حجن رو خوندید اینا به ذهن نشون ما که اگر قاعده المهن مشوته رو قبول کردید این قائده میاد جلو احکام شریع شرط مثلا کتاب تو بخشن شرط من یه مثلاً شراب هم باشی بخونه این نمیشه این اشتباه این تصور خطا است اصلی این تصور خطا است دقیق می کنم چرا و لذا در روایات اهل بیت ما تخصیص نیست تبییمه یعنی با واقعا التضامات شخصی هیچ وقت نیمتونه داره که به التضامات رو آنیم این یک نقطه بود که نیمزه ارز کردیم ی خود این عدل شرم خود این دلیل که میگه المؤمنون اند شروطه هم. ببینید این کار چیه اما برای بحث بگم مطرح کردیم که آیا عقض هم اصطلاحا به شرط گفته میشه یا نه گفتیم از آیان، از علمای ما در این دوران اخیر که الان اسم از دهن من هست مرموم سهید یزدی در حاشیه اور، در حاشیه مکاسب مرموم شه ایشون میگه در حاش از روایات رو ذکر میکنه که در نوع کلمه شرط به کار بردیش و منع اعتباره کلمه شرط هستان دوش کار بردیش من نمی خواهده استضلابیم شون رو تو بحث مکازه متعرض می شون لیکن انصافر از اون حساس فرم با ایشان. اون مواد استعمال هست این که ما ندیدیم اما قطعاً باید محتضم می شونی نهر مجاق بود قطعا ارتکاز و ما این است که اعتبار مجرد رو وعده میدونه مثلا اگر گفت من قول میدن کنون کار رو بکنم این میگه شرطه این شرط نیست قول جنه شرطه میدونه به ذهن که مشهور علماز در معاصلی ما که مشهور این هست که التزام فی التزام التزام فی التزام یک نوع التزام لكن در ظل التزام دیگر نه مستقلن مثل اینکه که می کتاب رو فروختم به شرطی که بر من یک نامه ببینیسی این بحث, این بحث دوم بود بحث سوم این بود که مفاد اعتباره شروط چیه المؤمنون اند شروطه در این علمای ما از قدیل نه حالا احضر سلمت فحض بحث کرد, کرد. دو کردیم دوست احتمال ارس کردیم که نیم وارد بحث بشیم. مرحوم شیخم این بحث رو توی مقاسب بحث خیارات و قاضی شروط آورده یا قاعده جن و قاعده شروط خیارات خیارات خلل میشند در اونجا ایشان متعرض شه مثلا من ببینم این شروط میاد نه در شرح مکاسب اون قاعده شروط احتمالاً شد جداگانه و قبل از مکاسب نوشته متن که رساله یک مقداری ذریسه از بنی مکاسب یک جور مکاسب است که متنش با بنی دقت‌های شش نهوری که به این واسطیه مکاسب به خیلی متن همین چیزیه خیلی ساده و خیلی طولانی و احتمالا این جوگانش شیخ سالی ای در رفت میشت ودل تو در مقاص وارد بشر به بقیه ثبت کتاب میخوره. کارشون هم در سیارار به بقیه ثبتی کتاب مییم حال ت بیشتری بکنن به بقیه سب کتاب اون یکان به رسالهی در درشر روز معرو شک بعد او رو ملک کردن به بحث سیارار. در حال بحثشروط یک بحثه مستول نیستیم تو این بحث رو که هست اینه که از المؤمنون عند شروط این چی فهمیده میشه از این کلمه عند هل بسا المؤمنون شروط این جمله اسمیه توضیح اندالو مسابقن جمله اسمیه ممکن در مقام انشاء به کار برده بشه که شاهدش حالا اینجا ممکن است دیگه از کلمه عند، لكن از زنی مغارم هم داریم چون مراجع استاد آیه خویی منکرن که جمعه اسمیه در مقام انشاء به کار برده میشه. ما هستیم زادن به کار برده که مشکل نداره شباهد اگر باشه مثل جمله فعلی از هر میلنگرد نداره و هر حال المؤمنون اند شروطه توضیح داده شد که از کلمه ان یک حکم تکلیفی در آوردن یعنی یجب الوفا یجب از کلمه اند بیوزن تغییرش اجمالنگ دو ازش خیار و تولد حق در آوردن چون از سرم اگر نامه ندهش ببینید اولا توضیح داده شد التزام در زمین التضام پس التضام اول شما مطلق نیست کتاب رو فروختن این مطلقه کتاب فروختن به شخصی که نامه بر من بینیسی التزام اول شما حالا اگر نامه ننه بشت چیه؟ اگر نامه ننه بشت معنیش اینه که من دیگه التزام نمیدم در خلق تخلیف شرط موجود فساد ما آمونه میشه یا بگیم نه فساد تخلیف شرط فساد نمیاره چون خود اقود اوفو هم چه داری؟ نه اقل بوده دیگه بوده اقلی که بوده کتاب رو رو خده نهایت این اقل معلق میشه پس بیاین این تخلف شرعی این تعلیق رو درست می‌کنه اسم این تعلیق میشه توریدهام نمیگه می پس عرض نمیگه بصران عرض میاد یک توریده حقی می میکنه من دیگه اشاره اجمالی کردم درباره حق چون شیخ در اثر مقاصد بیخواد من ایشون راجع به هم نوشتن و علمای بعد از شیخ قبل از راجع به کلمه حق بحثی خوبی کرده حقیقت هر چیه که من نمیخوام وارد بحث هر الان اینجا بشن فقط به نحوه اشاره یا آبره عرض می کنن مثلا مرحوم نایمی حق رو یک نوع ملک زعیف می دونه درجه زعیفه از ملک یک نوع درجه ضعیف از ملک رو ایشون حق می دونه اما ارز کردم تحریفی که امروزه در اینطور که در این کتاب سنهوری آماده در قبودان های قربی بیشتر تحریف حق اینه ماجعه لساله شخص هر چیزی که برای صالح انسانی در صلاحی در اختیار انسان قرار به نفعی که چه قرار داده میشه اکثر مراجع و استادان منکرن فرق بین حق و حق نمیذارن برای ما اخویی هر دو از یک سم می‌دونن، فقط میگن این یکی اثر کردن چه آشکارتره و نواقصتره و ائبلا این این دو تا با هم دیگه دو تا خیر اعتبار قبول نداره و حق داشتن اینه که اینا دو تا خیر و همین تعریفی رو که الان حالا ان شاء الله اگر من بحثی بزنم برای بحث من برای آشنایی ذهن میخوام از این بحث اینه که اگر تخلط شرکر المؤمنون انده شروطه نفته تنه رو بقصد خود کلنه المؤمنون ان شروطه با قاعده اوهوب و به نظر اینکه این یک التضام از در ذنه نیست یکی التزام, التزام دیگری یعنی هم هست اینها رو که با هم جمع بکنیم تولید یک حق میکنی. در همین معنی که الان از در گروه های جدید مطرحه ماجر لساله شمس به این معنی پیلن معنی بکنیم یعنی دیگر آقا حالا که این آقا نامه ننوش تو حق داری معامله رو به هم دزنیم در اگه یادون باشید باشید از اول خیارا خیار رو مل... ملک سلطنت و فسخل عقل ملک رو فسخل عقل میگه این ملک همون حقه ملک در زیده ایز ملک. قدرت شما اینو در این صالح شما در این نفع شما قرار بزن این ماجوه لسالح شخص اصول شخصه با پس بنابراین میانده روچند شد چون یک التزام در زنه التزام بود التزام اول و از به نبود التزام اول رو معلق کرد نتیجهش این میشه که اگر این آقا اون نامه را ننوشت درافت بحثت تو درو خاطر بحثی نتیجهش این میشه که اگر ننویش تولدی یک حق براتون میکنه علی دوستون دلق دقت رو نرمیشین توی بحثه خارجی نه بود یه حالت تغلیلی باشه آیا از کلمی البوم من اینو توی مغز ذهنیه کردن تمام کلام سر همینه من چند بار عذر کردم که این مستشین من تو مستشین قضیه حالا چه دید جور دیگه ای شد مستشین قضیه قبالان یابودی هم بوده یکی از حرفاتون اینه که اون که در ما در از نصوص داری نصوص این محدوده خیلی مخلومه کمی داره این فقه ها بعد اضافه کرده این چیزی نمیست در نصوص بوده این یکی چیزی ای بوده, بوده که بعدها بهش اضافه شده حالا به سرحن اینه که از کلمه المؤمنون اندشه بوده آیا فقط حکم تفریفی در میاد که وجود باشه فقط حکم وضعی در میاد که مثلا فساد یا خیار باشه یا حکم تکلیفی لردیه هر دو با هم میان البته ما این مطلب رو قبول داریم که اون که از نصوص اصلی شریعتی در قرآن چی در سنت دره قرآن نیازه به شهر داشته یعنی مستشتری چون مفهوم امامت رو از دید شیعه نگاه نکرده رو اشاره کرده ما چون مفهوم امامت رو خواهیم و اون چرا که امیر المومنین این من علیه موسیقی به عنوان شارعه کتاب و سنت فرمودن. این کلام هست از این جرد مشکل بیشه ما حل ده پس بنابراین ما به زنیمه مجموعه شراحید ما از کردیم حجوع ما به اهلس ایمه داریم سه یک آیا المومنون بشروع که سابط یا نه اهلسان نه میگن نه همشون نه ازیشون قبول دارن مشروع که مگن نه سابط ن الان تربیری که این ثابت بشه حد و حدودشیه مثلا نسیدید ما شرط میکنیم حرام رو انجام بده؟ فهمه فهم بودن نه بیدید؟ یک آن، دو حدود یک ان سه مدلود واقعی اونن. این نقطه فرق ما با اهل این تمام فرق در اینجاست. ما در سبوت و حدود و مدلود بر میگیدیم برده دیم اونها باب در هر افلید باب رو باید سبشن بر مثلا ابو حنیفه به نظر من ثابت است حالا چه احادیث اساسی هستند که من رد کردم او غرامت الخطا بخاری ها قبول ندارن حدیثشون قبول ندارن مثل مثلا فقط البوم نشوتین بخاری قبول ابن حزم قبول ندن این با مثال ارزش فرض کنید روایت راوی مشهور لاذر علالذرار رو بخاری قبول نداره فقط موثق مالق قبول داره اینا احادیثی هستند که به تعبیر جلال سویتی در کتاب هل و نظاهر مثلا دیگه لازر رو خب سفر بر لازر رو شما اصاب مسئله تر میکنه که ما این قائده رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم یا علا تقدیر قبول و عدم قبول توی مدلول و توی حدود چون ما بقید بحث قبول نیمیم یک مسئله اساسیت اون حدوده یکی تبییح هم مغلوله ولی هم قبول بکنه تا اینجا روشن شد یک اجمالاش میگم ولی بحث دیگری ی مطرحه که آیا شرط فاسد موجب فساد عقل همیشه هم و نمیشه مراد از شرط فاسد شرطی که شاره اجازه مثلا شرط بکنه یه لیوان شراب بخوره مثلا کتاب بگم 100 تومن به یه لیوان شراب بخور البته مسئله خلافیه اونچه که الان اجمالا میتونیم تونیم در اید نیست این بین احسام شرط سر بگذاریم اون شرطی که بیاد اصل، چون شرط التضامه بی التضامه دقت قطعه اصل التزام ما رو به هم بزنه اصل خود التزام رو به هم بزنه اونجا شرط فاسد بخصده مثل شرطی که مخالف مختزای عرضه، چون فساد شرط به جهات مختلفه یعنی شرط وقتی فاسد شد مخالفت مصداق عرض شد و فاسد شد اصلا دیگه چه جوری عقد موقع عقد میشه وقتی از فاسد میشه اما وقت شرط فاسد خود عقل به هم نمی میگه کتاب گفتن که یه شراب اون خب شراب خوردن حرام این شرابی به التزام به عقد داره یعنی تکلیفش رو این ها این اتزامن. اگر ما خوزه خاص بگی تخلو فشان موجب بشه فساد از سام باشه میشه که اون این خیلی غلیب که شرط فاسد مسدود باشه اگر تخلو فشان تو دکتری آنان تو جی شهر کردن اگر تخلو فشان منجر بشه به فساد عمد. نه منجر بشه به خویده حق اگر منجر بشه به فساد از طبیعتن اگر شرط فاسد بود بازم منجر میشود مثلا در مثل تخلف بشه فرق نمیکنه شلون اون مرد نار ما قبول نکردیم که تخلف بشه منجر میشه به فساد ام بلکه منجر میشه به تولید هم نپردازیم این مسائل هستند که خودش خیلی خوبه چون که اون خطا بودی راحت این مسائل بسیار اساسی و برای تون ارزم رو کنم مثلا اینکه تخلاف شرخی آنید این تو دنیا شرخ هم هست اختص نداره آن اگر باید داریم یکی از قانوندانه ها و هودانه های معروف عربی ها کتابی داره بنامه یکی کتابش مجموعه هست بعد یک جا به نام علا چاپ شده که ایک یکی هم چاپ شده دهجل یاد دهجل ده هم داره از داب خنگوری از بزرگان در ها و و خوبیشنگ اینه که در طرف قانونیش احاطی کامل به مواد قانون مدنی اروپا فرانسه آلمان ناری چیکی میانه مواد قانونیان ما هم توی خیلی از بحثه قاعده ای که برخواهیم گفت مثل بحث حضوری نرمی کنی چون مثلا آقای میگن در بحث حضوری به اصطلاح اجازه کاشف باشه از خلاف قاعده از اجازه باید ناگهان باشه اینطور گفتن دیگه ما اینشاال از ع که جاان صففر کرد قبل زار از خود قوانین تربی مثل آلمانی از آلمان و از اجازه هم در اینجا کاشر میوانیم که قطعا اونجا هم اونجا نحتی در کار میطر قوار بیای. به تحویلر خود می ندل اجازه اثر هم تحتطرایی است که آن اطرلا طرار میخوا قبول نکنند که درتون تع رو اما اشتلاات معوع. ما این ش را در مبانث بیشتر از این کتابایی ایشون در مث انتظامات این دو جریده، انتظامات التزامات شخصیه این که به انتظامات پرداخته، علاوه بر حقوق، از به حقوق و مجموعه آثار چه مجموعه دنجلی از درجی، یک قطورم حضر ارزشش خیلی قطوره. به نام الوسیث که قوانین مدنی غرب رو مقایسه کرده و تحلیلی رو از منظر قانونی ارائه کرده. این برای اطلاعات قانونی خیلی خوبه. یعنی انصافا در این جهت فوق العاده مفیده. و چون به نظر میشه که از این قابلانه جدید ایمان تونسیه مراکشیه که آلا شما شد بیرن تازگیر نمیشه یک کتاب به نظر یا در حقوق قضایی یا در حقوق مدنی من مال قوانی به نظر شاید حقوق مدنی باشه الان تو زهر هم کتازگی نمیشه ویویس جلده که با حاله این کتاب یکی میگن در اونجا اسم این کتاب بولن ویویس جلد فقط این مسائل رو باشه. و این طور زحمتی کشیده باش. به هر حال این مسائل رو چون ما مثل ما خیلید بگیم اقلالایی اطلاع بر مثل تردیخ ای ما اثره برای اقلالایی بودن بگیم اینا بزنی که تعبد شریعت باشه تعبد به نفسی باشه اینا اجازه به کاشف میگنن بزنی که اصلا که سعب خودی هم میگن طبق قاعده و طبق عقل باید اجازه ناخل باشه روا بلزکیان در بینه ناسل بینه هر وقت شاکون کجوشه و که تا ایو الا اخر اون موضوعی که گفته شده ما در اونجا خواهم گفت که اصلا مسئله کش در کتاب عبدالرزاق تنگولی به نقل از موارد امورات قانونیه قانون فرانسه و آلمانی اینجا الان چیزی به چند تا قانون در اینجا وجوده اصلا تصویر میکنه این ندل اجازه اصلا قهدراوی ام این اثر قهدراویه مسئله کش تا بودن توش اوغلاویات از پیدا کردن در عبارات ما آمده انصافا وقتی انسان در خارج نگاه میکنه مطابق با ارتکازات و هم هست این جهر خیلی خوبه که آیا یک مقایسه ای در این جهر داشته باشه پس بنابراین یک بحث مهم که در قارضه شروع داریم که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه این تفسیر تفسیر بدینی اگر تصاد شر جوری باشه که خود عرض رو برگاره مثلا بگه شرط کردم این کتاب رو فروختم به شرطی یه هیچ نحوه تصرفی دخلی انتمالی هیچ کاری بر اون که بنازه چیزی بهش خب طبعا تصاد عقد از عقل میاره. بگین. اما اگه گفت کتاب فروختم به شرطی که شما مثلا فرض کنید خراب بکنی. خب اون تصاد عقد نمیاد، شما احساس بشید. اون یک التزام نیست، یک التزام. التزام اول درسته. التزام دوم راحتشون تقلل شرط میونه. و چون اینجا امکان نداره شرح انجام بده اگه اینجا تصادر این را که به این مقدار از بحث این سه چهار بحث که الان روشن شد باز برگردیم به شرح ببارت مرحوم شیخ و برگرد مطالبی که اصحاب فرمده مرحوم شیخ در معاملات از فرمال این عبارت هم مال مرحوم شیخ باشه اصلا شد تفراد از کتاب شرح قواهد مرحوم شیخ جنفر کدیر باش به هر حال ایشون نمیشه که المعاملت المشتبه از المحابا که به این این القاضی مایوسا به یه اشتر در به خونه یه درمگیمه بیگیمیم سه صورت نمیشن فعلاً یه صورت من المعامله الا المحابا این صورت اول به این معنا قصد معامله داره لکن به نحر طولی یعنی قصد اولیش اینه که نهمیدون به قاضی برسه قصد اولی میگه پول بدن به قاضی قبول نمی مشکل درست می کنه میگه آقا قاضی خونه رو خروفتن هست اساسا نظرش محابات بوده لیکن دل رو هم قصد کرده چون شیخزاری که لم یکسود علم محابات چون اگه لم یکسود علم محابات یعنی قصد بین نکرده بین باطله به این معنا لم یکسود قصد اولی قصد اولی محاباته قصد سانری در پول رو قصد بینه قصده این رو قصد داره و که در سوگ قصد محابات این خره او قصد در معامل الله که جعل المحابات لعجل حکم الله ایشون بگه نهر شرط نباشه نهر تواثی باشه که تو من هم اگه شرط نیست این صورت دوم ایشان به این معناست که ایشان قصد نهر ارضیه هم قصد معامله داره هم محابات داره هر دو به نهر در قصد عرضی ایشون اینکه پهیر بشه در این دو صورت روشو نه این قصد در اصلا معامله اما اگر در اصلا صورت اول واقعا خونشی میخواست به توشه نه اینکه به خاطر اینجا دست اولی شروع شخانه بود کم حالا کنم یک پروندن بیشه قاضی خونه رو به قاضی دستوشن دیگه این به رفت من پس قصد معامله داره این صورت ثوم رو ما تشمیح کردیم به بهی مزتر نه بهی مکرد یاد آن باشه چون کسی که بچهش مریضه خانه ده میدینه بخواد بسید که علاج علاق بخواد چه سه میمیخورم ببینید این مزتر رو به تنگیه پوله لیکن خانه رو نمیخورم پس این میفروشه قصد به اداره لیکن در اینجا در اساس این صورت اول ایشتباهه در اینجا از اول قصد به داره لیکن اینجا حالا که پرست پیش آمده اون صورت اول از اون مثال به مستدر این صورت سوم. در اینجا که میفرمه که این رشونی صحابه کله هدیه، لیکن ملحق اتان به رشون به درست فرمه و فساد ها در سه صورت پس در هر سه صورت قائل دو قرمت شدن این نمر کلام قائله ملازمه اگر یک معامله ای حرام بود خاصه به حرف یا نه؟ آیا حرمت این معامله؟ در هر سبت گفتن این معامله حرامه؟ آیا حرمت معامله مقتضی فسادش هم هست یا نه؟ مشکل چیه؟ حالا ما برفرزم بگیم حرمت معامله مقتضی فساده مشکل اینه که اینجا حرمت تس... معامله به دلیل لفظی نیامده نیمونده لاپده بلا تنکه همانه که آبای کن مثلا آبای کن به این صورت می آمده اون که در اینجا آمده بگه هم خانم اونشون یک می گم اینه که رشه حساب کش قصدش اینه که این به نبو حکم کن این صرف این در فساد معامله ها یا قاعده حرمت معامله مختصی فساد هست یا نه ظاهرا نظر شهر احتمال افتداعا این باشه این را دیده نظرش که ظاهرا که آیا قاعده که در باب ملازمه حس و حرمت معامله ملازم است با فساد معامله ممکن است لایقش دیگه نه چون معامله یه چیز فساد جز ماهیه یه این عبارتیه مرحوم میزای شیرازی که از میشون معروف از میرزا دوم یا میرزا کوچیک به اصطلاح مرحوم احمدطری شیرازی که معروف است به صاحب انقلاب انقلاب سال 20 عراق 1920 با این غیر از میرزای شیبازی معروف که قصه کنبا ای پوسکیشون سیدن آسوانو در حسن شیبازی هست ایشون این آشوانتری شیبازی خیلی بانتر ما ملخصه هون از خیلیشون هاشی خوبی هم داره چاپ قدیم شده سحنی. خیلی خوب این کتاب اگر دومنطور تحریم بشه چاپ بشه خیلی کتاب انصافا هر سطرش با دقیقت نداشته شده خیلی تتاب دقیقی است نشون که در اواخر اوم یا در وقتی برحال تیشون خیلی خبرگی علمی داشتن ایشون اولا فرم نه از ظاهر ان المراد الفساد صورت اخیره که من الان تو ظاهر اعبارات مهمو استادهای خودی خویی که فساد رو به حرف زده خب انصافت اینجا خیلی ما با مرمویزه شد از این موافق نیستیم ظاهرا عبارت شیخ قصاد به هر صورت میشه محاله در صورت حدیه بودن نه اهل اگر رشوه چه قطعاً فاصله رو چنین ظاهرا مراد شیخ در این است که در هر صورت سرش اینه که یا حرمت رو به خاطر رشوه بودنه نه حرمت به خاطر نهی در خود معامله لذا این بحث میاد که ای این حرمت ملازم هست با فساد یا ملازم نیست بسیار لا لا بل املى وجهه ان به بالمعنى المصطلحى من توضيحا سابقا از ثغر در بعضی از کتب آمده منم اصولی اسم ندارم گفتم رشوه ورشوه و, و رشوه هر سه صحیح در بعضی از کتب آمده رشوه خود فعل رشوه اون پولی که داده میشه مثل وضوع و وضو وضو خود فعل وضوع اون آبی که انسان باشه میگه ما فعل الاطهارات یکی از مواردی که معنای اسم آلطه یعنی خودشیعه وزن سعوله تهور یعنی پاکی تهور مایوس سحر رو به سهور یعنی سحری خوردن سهور یعنی مایوس سحر رو به ضرور بازال و راه بطر راه لره. ضرور به معنای پاشیدن مثلا نمک پاشید ضرور مل حلطه آن نمک پاشید ضرور خود که ضرور پاشیدن نمک و پاشیدن چیزی ضرور اون چیزیست که این در لغت عرب هست اینکه از در عرب. سهور و سهور توهور و تهور ایشون میفهمن که بخصه شده شده, شده هم در رشته برش حالا ایشون فرض که رشا به معنی مصدری اگر معنی مصدری بگیری که خود پول دادن نه پولی که داده شده نه خانه که قیمتش ده میلیون بوده یک میلیون خود این کار به معمول مستری صادقان الى دفع المدی همین که خونه رو میده با این خونه دادن عمل رشته رو انجام داده الگی ها با فی معاملته فیکون و دفعه حرامه دست دفع این خونه حرام میشه خوب دقت رو حالا ما ایشون از چرای رفت میزه شیرازی ایشون ما مخد... یعنی اون میخواب من این مقدمه ای کار باید نقطه فنی. اون نقطه فندی که قطعا نظر شیخ به ما اگر میخواهیم ما بین حرمت معامله و فساد رابطه برقرار بکنیم باید حرمت به خود معامله بکنیم اینجا حرمت به خود ما، نکنید که خودت نفوش الله هم داریم و هم عبود و قودم داریم اما رشنه بهش این با فروشش رشوه رو محقق کرده ایساو بیه که محقق شده، با دست خونه هست وقتی خونه رو میده اما وقتی که گفت بینش که دید به میگون توان ترشوه توشی نیدیم این که وقتی خونه یه ده میگونی رو به اضایی یه میگونی دیمیشه بیشته سیکون و دست و ده له ولای جامع او چون در حرامه پس باید بگیم خود معامله باطله میدانی نمیشه معامله دلی باشه چون یکی از لوازم معامله قبل از باز دیگه وقتی من کتابو بعد کتاب رو به طرف بدن تسلیم و تسلم این از لوازم وقتی در تراشه چون علی راه اومده و هو لای جامع <محامل> لأن سَحَتَ الْمُعَامَلِهِ مَلَاظِمَتَونَ لِوُجُوبِ دَرْءِ به جای در بذاری تسلیم تو با تسلیم را من بگو بشه اللا اَنْ مُنَافِي لِهُاربَتِ يُمْنَ صِدْقَ رَشَا عَلَدْدَرْ رشا اصلا صدق نمو کنه به فَإِنَّ چون وقت آن چیز اینکه سم حق مطلب داده نشه بردیه مطلب رو خرده این شبه همزی می کنیم مرحوم استاد خودن از این راه وارد <تصفيق> این چیز این ما رو ما از چراه اصوبی و چراه قاعدهی وارد بشید این نکته زریب و برسه که این شبه فرده هست